سلام يكن کلکو ودیون من از و کبر و تکبیرات و صلاة و سلام علا خیر و اشرف بریت سیدنا و مولانا حبيب الله اله العالمين ابو المصطفى محمد اللهم صل على محمد و <قومتیان> <سلام> سیما ابن امهی اخیه خلیفته و ناصر حقه اصد الله القالب قالب کل قالب و مطلوب کل طالب امام المشارق و المغارب مولا المبهدین امیر المؤمنین، علی ابن عبی طالب صلوات الله حتما و مولانا حجت ابن الحسن العسكري المهدی ارواحنا لطراب نظرم المحباب بلانت الله على اعدائهم و مخالفیهم و معاندی هم و منکری فضائله هم و قاصبی حقوق هم و قاتلی هم من الان لا قیام یوم الدین خب شب بیست دوم ماه مبارک رمضان خدا رو به عابر روی المؤمنین علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید الله همه ما رو ختم به خیر فرماید دعا ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید امر فرج اون حضرت رو اصلاح و نزدیک فرماید یه سلوات دیگه هم مرحمت بفرماید خوب امروز ما در این شب های ماه مبارک رمضان یه شرح خیلی کوتاهی بر موعظ و فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبا علیه السلام در نامه سی و یکمه و شبه های گذشته عرض کردم که این نامه خلاصه سراسرش و از مطالب حکمتامیز و سودمند و ارزشمنده که امیر این مطالب رو برا فرزندشون به یادگار گذاشتند و امشب به این جملات در دنباله این نامه میرسیم که هر حضرت به فرزندشون میفرمایند که لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتؤادي صديقك یعنی میفرماید که دشمن دوستتو تو دوست خودت نگیر این شما با شما با یک کسی دوستی و اون دوست دشمن داره میفرماید که دشمن دوست تو دوست خودت نگیر یا با دشمن دوست دوستی نکن بعد به پسرشون میفهمن اگه این کارو بکنیم در واقع با دوست خود دشمنی کردی من توجه فهم آدم وقتی با دشمن دوستش رو هم می‌ریزه در واقع با دوست خودش داره دشمنی می‌کنه بهش دش نارو می‌زنه خب این جمله مال دوستی‌هایی که این دوستی‌ها برای خداست چون اسلام اسلام میگه که اگه دوستی هم میکنین برا خدا دوستی کنین اگه دشمنی هم میکنین برا خدا دشمنی کنین خیلی هم سخته پیامبر روممبر فرمودند الان میخوام بگم چرا ما برامون عمل کردنه به این جمله سخته پیامبر و منبر فرمودن که ایو اورال ایمان اوثق گفتن کدوم دستگیره ایمان مطمئنتره که آدم به او چنگ بزنه خیالش راحت بشه بگه من به یه دستگیره چنگ زدم که حفظم میکنه سقوط نمیکنن. خب هر کسی بلند شد یه چیزی گفت ولینا این سال اگه یه خبرنگارم بیاد تو تلویزیون نشون بده جلو مردم رو بگیره هر کی یه چیزی میگه مثلا بعضی ها میگن نماز چون میگن نماز بعضی ممکنه بگن روزه بعضی ها ممکنه بگن جهاد اونجا هم همینطور پیامبر هیچ کدوم نپسندیدند. فرمودن که بعد گفتن نظر شما چیه فرمودن خب فلله و بوق فلله خیلی هم سخته یعنی اگه آدم کسی رو دوست داره برای خدا دوست داشته باشد اگر هم با کسی دشمنه برای خدا دشمن باشد همینی که یه شعوبش همین محبت امام حسینه محبت امیر من همین ما امیرالمومنین رو برای خدا دوست داریم علی حب او نعمت اصلا محبت علی نعمته یه نعمت بزرگه چون توجه چون اصلا عرب بوده دیگه اصلا ایرانی هم نبوده همشهری مام نیست هم زبان مام نیست ما اگه او رو دوست داریم برای خدا دوست داریم اما همش این نیست حب هب فلله و بغض فلله قرآن ظاهرن در این زمینه گفته من, من یک فر به تاقود و یومن به الله و قدس تمسکا بالعروت الوسقا تقریبا همین سآل پیغمبره میگه کسی اینو داشته باشه به دستگیره مطمئن نیچنگ زده که چی؟ که ایمان به خدا بیاره کفر به تاقود این یعنی در واقع اگه کسی رو دوست داره برای خدا دوست دارد اگه با کسی هم دشمنی میکنه برای خدا دشمنی میکنه این ببینید معنیش اینه که اگه من یه پسری داشته باشم مثلا بی نماز باشه روزه نگیره روزه خار بشه من بگم حالم از این به هم میگم میگم ولو پسر من باشه ولی چون نماز نمیخونه اصلا آدم نیه اما یه پسری قریبه است با مای اون نماز شب میخوند اسم میاد مثل بارون میگم یه موی اینو من نمیدونم به درد و مثل بزر خود اینا این میشه قبط فللا میگن آقا تو آقا بچه قریبه میگم اونو اگه من دوست دارم برا خدا دوست دارم از بچه خودم هم حالم به هم میخوره برا خدا حالم به هم میخوره میگم این بی نماز من دوستش ندارم اون اسم امام حسین میاد اشکش جاری میشه نماز شبونه من یه موی اونو به ده تا مثل این نمیدم اینا میشه محبت برای خدا یعنی امیرالمومنین میفرمودن سه تا محمد این خیلی طولانی میشه میگفت سه تا محمد و من خیلی دوست داشتن اگه الله اکبر الله اکبر اللهم صل دکی محمد ابن عبی پسر خلیفه دوم خلیفه اول پسر خلیفه اول در مورد او می گفت نگین محمد ابن عبی بکر بگین محمد ابن علی بگین این پسر من من برای خدا دیگه بید. پسر او عاشق امیرالمومنین بود فداکار جونشو رو برای از تعمیر میداد یکی محمد ابن جعفر تیار پسر جعفر تیار برادرزاده امیر المومن که اون رو نمیخوام قصه شو بید. یکی هم محمد ابن عبی حضیفه این پسر دایی معاویه بود این محمد عبی حضیفه دایی معاویه بود اتفاقا ابی حذیفه در جنگ بدر به دست امیرالمومنین کشته شد یعنی باباشو علی کشته بود عاشق علی بود محمد ابن ابی حذیفه می شما نمون محبت برای خدا رو ببینید شما یه کسی باباتو کشته شما جونتو براش بدی بگید برا خدا کشته فداش بشن نه شما محمد نه ابی حذیفه امیرالمومنین به معاویه میگو اگه تو با من دشمنی رو کناهای جاهلی دشمنی برای خدا که با من دشمنی نمی که من برادر تو تو برد کشتم دایی تو کشتم جدتن کشتم پدر بزرگی تو سه نفر آخوا به تست امیرالمومنین در بعد کشته شدن یکی داییش بود کمی ابی و یکی برادر معاویه که پدر بزرگش بود تو رو کناهای جاهلی الو برای خدا که با من دشمن نیستی که این محمد ابن ابی حذیفه اومد پیش ماویه گفت آخه به پسر دایی گفت علی بابات رو کشته تو به جای که طرف من باشی رفت طرف علی تو بعدن پشت من باشی انتقام بابات رو بگیری گفت ماویه یه چیزی میگم هرچی آدم مؤمن صحابی بزرگ پیغمبره من بینم دوره بر علیه سلمان دوره علیه ابوذر دوره علیه مقداد ابن اسفد با علیه اویس قرن با علیه هرچی آدم کلاوردار و شارلاتان دوره توه امراث با تو مغیرت ابن فلان با تو خب من از همینجا میفهم تو باطلی اون حقه گو همه خوبا پشت علی هم. همه آدمای مسئله دار دور تو جمع شدن این آخری پیچیدم که صحبت نکرده خیلی آقا ساده گفت نگاه کردم دیدم تمام بزرگان اصحاب پشت امیر المومنین هم. سلمان من نا اهل البیت با او، عبوزری که آسمان سایه ننداخته بر راستگوتر از ابوذر با او. اما با تو کی امثال امراض و خیلی روشنه حب فالله و بغض فالله حب فالله یعنی یعنی آدم آقا پسر عبی و باشد پدرش به دست امیر المومنین کشته شده باشه عاشق امیر المومنینه میگه من برای خدا من، من برای خدا علی رو دوست میدنم این توجه اگر محبت ها برای مال ما ببخشین آقای من اینجا ما محبتمون برای منافع دنیاویه حالا چجوری میشه هم شما رو دوست دارم هم دشمن شما رو دارم. میگم همین به دردم میخوره هم اون به دردم میخوره ما آقا دنبال مال دنیاییم می... میگم به من چه با هم اینا با هم مشکل دارن گای دستی از اون میگیرم گایی از اون میگیرم و هر هم الحمدلله به ما دستی میدم به این گفتم پنجا میلیون بده چند روزه میدم داد به اونم گفتم 100 میلیون بده داد حالا من خودمو خراب کنم به خاطر محبت هامون برا خدا میمید محبت برای منافع دنیا بله اونی که برای منافع دنیا دوست میدارد منافقانه برخورد میکنه هم با شما رفیق جنجنیه هم با دشمن قونید میگه به من چه خب هر دوشون برای من منافع داره. من از هر دو بد ندیدم جلو شما میگه حق با شماست جلو اون میگه تو درست میگی میگه چی کار کنم خره دیگه نمیفهم ای بابا به پسرش میگر که تو برا خدا دوستی, دوستی کن رفیق بگیر اگه تو با دشمن دوستت رفاقت کنی در واقع با دوستت دشمنی کردی خب برای خدانی، برای منافع دنیا. من با... چقدر تو اسلام میگن که فقرها رو دوست داشته باشیم چقدر ما حدیث داریم. یه روز براتون گفتم سلمان میگه پیغمبر منو به هفت چیز سفارش کرد. اون رو دو سه تاشو گفتم. نشو رو مثلا ایشون که به من گفت از مردم چیزی نخور. انلا اسالم ناسه شیا. یکیشم اینه به من میگفت اوهب, اوهب بل فقره فقره رو دوست داشته باش به اینا نزدیک شد فقره نه یاله کی فقیر باشه مومنه نه این که میگه فقره رو دوست داشته باش یعنی دوستی هات برای دنیا نباشه چون ما ها اغلب پولارا رو دوست داریم چون میگیم یه منفعتی برای ما دارن فقره رو اغلب ما خیلی باشون دوستی نمی کنیم الان یک کسی پولدار باشه من چقدر تر و خوش میکنم شما گاهی تعجب میکنه از من سوال میکنی خیلی نتر میگم با این پاساج داره میگم این اینجوری نگاه نکن من و تو رو با هم میخره و میفروش میگم این الان صندوق قرزالحسنه داره کمترین وامی که میده هفتاد میلیونه شما هم از این رو بده تعویضش می‌گیری میگه زودتر میگفتی آقا من کاموجوش دراز می‌کردم بود <تصفح> زودتر میگفتم هر وقت بیاد حیات میو میگه که حاج آقا چایی براتون بیارم اونم حوصله که نداره میگه دوباره میگه اگه کولر از یت زوم میکنه خاموش کنه میگه خب این به درد حالا همون میاد یه روز من تعویضش نمیگیرم شما میگی که آقا چرا تعویضش میگم خرد زمین خب بعد هم حالا اون از مدتی میخواد دو خور زمین نمیگیریم. نمیگیری پولداره که این محبت ها برا خدا نی. این انت ترجمه بکنم اما کسی برا خدا دوست بدارد هیچ وقت دشمن دوستش رو دوست نمیگیره نمیشه که آقا شما این آقا رو برا خدا دوست داری چون امام حسینیه نمیشه میگی اونم برا خدا دوست دارم بلو دشمن امام حسین این جور در نمیاد آقایون اگه محبت ها برای خدا باشد شما نمیتونی هم با این دوستی کنی هم با دشمنی شما نمیتونی هم با فاطمه زهراد دوستی کنی هم با اونی که پحلوی فاطمه زهراد رو شکرد این نمیشه این یه جور ایراد داره. یکی اومد به امیر گفتش که من شما رو دوست دارم فلانی معاویه رو گفت گفت فلانی هم دوست دارم حضرت فهمیدن تو یه چشی هستی یا دو چشمی بشو تو یه چشی هستی یا کور بشی یا دو چشمی بشو گفت ببین توجه بفرمایید یعنی یا فقط منو دوست داشته باش نورانیشی ببین یا منو رها کن برو دنبال معاویه کورشی این نمیشه شما بگی من هم علی رو می‌خوام من معاویه امام صادق فرمودن حیات کذب است من محبتنا ولم يتبر من عدو ونا یعنی دروغ میگه کسی که میگه ما رو دوست داره اما از دشمنان ما بیزار بعضی اینجوری اینجوریان دیگه میگن ما فاطمه زهر دوست داریم ولی خلفام بالاخره خدمات ازنا این به در نمیخوره تو زیارت آشورا میگیم رزقن البراعت من اعدائی کن بعد دعا کنی خدا روزی تو کنه دشمنی با دشمنان اهل وی تو شما بگو من حسین رو دوست دارم از دشمنان امام حسین هم لا اله الا اللہ طبقا براعت قبل از بلایته اول میگیم آقا ما هیچ کله ای رو قبول نداریم جز خدا لا اله نیست بر لوه دلم جز علف قامت یار من یه آیه هم از قرآن بخونم این حالا قلع زمینه اگه اینا برای ما عجیبه مثلا میگیم آقا چه ایرادی داره من با این آقا دوستم با دشمنشم دوستم به من چه مربوطه اینا با هم برای اینکه محبت هر برای دنیا هست برای ما اینا نمیتونیم بفهمیم ما میگیم این برای ما منافع داره اونم داره به ما چه مربوط اینو با هم خوب نیستن اما اگر محبت ها برا خدا باشد اون موقع اصلا چه معنا دارد که آدم آقا هم امام و رو دوست داشته بشه هم یزیدی رو یکی آمد به مولای ما امیر المومنین گفت منو رو نصیحت کن حضرت فهموندم برو ببین کیا رو دوست داری قیامت با همونا محشور میشه اصلا چه اومد آتا منافقین چی؟ منافقین که دلشون هم اینا رو میخوان هم اونا رو میخوان چی؟ اگه از من میشنم مال منافقین هر دوش دروغه دروخه فقط برای منافع دنیا ما دل... آدم بود آقا تو اداره تا پست داشت همه جوروش همه رواز از پست که سلام هم میترد جوابشون نمیدون مال منافقین اینجوری اصلا محبت نیست. به این توجه ببهمه تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتون از پول که بیفته سلام هم کنی جوابتون نبیدن اصلا محبت نیست فقط کلاورداریه به خاطر این اونا روز قیامت همش با هم دشمنی میکنند پردعا میره کنار میرن همش با هم دشمنی میکنند همه دوستی ها به دشمنی تبدیل میشه مگر اون دوستی هایی که برای خداست. بله مثلا دوستی حبیب ابن مظاهر و حسین ابن حدید. اون دوستی که برای خداست مسلم ابن اوسجه 86 سالش بود من چقدر بدن این تیل خورده بود وقتی حبیب ابن مظاهر اومد سرش رو به دامن گرفت دفیق 82 سالش امام حسین هم رسید وقتی امام حسین دید سرش دیگه تو دامن حبیبه امام اون بالا دید دوستش اومده سرش رو به دامن بعد حبیب گفت مسلم حاجتی چیزی نداری ما باشیم میگیم اگه دستمالی داری این خونه سرم رو ببند میریزه تو چشم اینا رو میگیم من دیده بدم هم اینا رو میگفتند که سرم رو ببند زخم رو ببند گفت حاجتی نداری گفت حبیب این مرد رو تنها نداری این, میکنید. این سرش نمیزه چی میگه سرش رو بارم میگه حسین ابن علی. خب اگه سعادت دنیا و آخرت رو میخوای این مردو فنها ندار این محبت برای خدا هست. همه دوستی ها به دشمنی تبدیل میشه الا المتقین مگه اونایی که برای خدا دوستی میکنند یه آیام از قرآن بخونم خدا به پیغمبر میگه لا تجد و بدین لا تجد و قومن یؤمنون بالله والیوم الاخر میگه پیغمبر تو هیچ گروهی رو پیدا نمی کنی که اینا به معنای واقعی کلمه به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشن خوش بدیم. اما چی یوادون من ها الله و رسوله اما دوستی کنن با اونایی که با خدا و رسول دشمنی میکنن میگه محال همچین اینا ایمانشون واقعیه هیدانه نمی کنی یه گروهی که به معنای واقعی کلمه به معاد ایمان آورده باشن به خدا ایمان آورده باشن اینا با دشمنان خدا و رسول دوستی کردن رابطه دوستی داشته باشن ولو کان آباه هم ولو این که دشمنان خدا و رسول کی باشن باباش باشه باباش دوستی نمی چون میگه که این با خدا و رسول او ابناهم یا اینی که با خدا و رسول دشمنه پسرش باشه یا برادرش باشه یا همقبیلش باشه یا زنش باشه امیرالمومنین المومنین میگون ما تو جنگ ها بابا هامونو کشتیم برادر هامونو کشتیم تو جنگ میدیم اونوره دیگه عزیزترین کسانمونو کشتیم اما هیچ وقت محبت به پیغمبر کاهش پیدا نمی کرد. نمی گفتیم این چه دینیه که ما رو وادار میکنه بابامونو بکشیم دوستی برای خدا اگه اینجازه بدید یه جمله ای از این فرمایشات واقعا دراربار رو بخونم جمله بعدی اینم خیلی آیو و وم از اخاکه ان حسنتا کنه او قبیه میکنی نصیحت تو برا برادرت خالص کن چه خوشش میاد چه خوشش نمیاد مثلا <تهم> تا بگو قشنگی ها نصیحت تو برا برادرت خالص کن چه این نصیحت تو خوشش میاد شما چیزی میگن خوشش نمیاد مردم دوست دارن شما رو بگید این مردم میذان همش ازشون تعریف کنیم من از امام باقی یه حدیث نوشتم اتب من یکیک برو دنبال دوستایی که گریتو در میارن و خوبه لکن اما, اما خیرخواه تو هم هر حق رو میزنه شما شب تا صبح خوابت نمیده اما حق میگه میگه میخوای خوشت بیار این راهی که میرد به ترکستانه داری بیراره میدیم بی راهه میری شما <تصفيق> میگین حرف حق رو میزنه حالا شما خوشت هم نمیاد از اون گینه باش رفاقت تام کنی میگه میخوای رفاقت تو قرض کنی میخوای دیگه با من من حق رو میگم چه خوشت بیاد چه خوشت نمیاد میگید با اینا دوستی کن ولا ترتب من یزهکک دنبال دوستایی نره که همش تو رو میخندونن و خوبه لکه قاش اما با تو رو راست نیستن حق رو نمیگه تو رو همیشه میخندونه شما میگه آقا فلانی و من اینجوری گفته میگه بی خود کرده قلب کرده ای بابا حق گفته شما خوشت میاد؟ میگه بی خود کرده گوشت بدکار نباشه آدمی زاد آقای اون حب زاد دارد آدم خودشو دوست داره عیبای خودشو نمیبینه امام صادق میفرمودن بهترین دوستان من کسانی هستند که میان ایباب منو به من هدیه میکنن احب و اخوانی الیه من اهدا الیه قیوبی به منو میاره به من هدیه میکنه میگه تو عیب تیمه اگه اینو برطرف کنی یه قدم رشد میکنی چون ما عیب خودمون نه من عیب خودمون چون ما خودمون دوست داریم اما شما که پا منبر من هستی و من رفیقتی، هستی عیب منو میبینی. میای میگی آقا عیب ای تو اینه اگه اینو برطرف کنی یه قدم به خدا نزدیک میشی. اما ما ها چون آدم آقا متملق دوست داریم اگه یکی هم بیاد عیب منو بگه میگیم حسادت میکنه. چشم نداره ما رو بگیم. بعد میریم به خونمون به خانمون یه اسمم بر من دود کن. بس که حسود دوره بره منه. خب اونم دیگه ای به تو نمیگه همش می تموق میگه میگه اگه تو نباهاصلن مش شد پیغم بر میفهمم خاک بپاشین تو صورت اونایی که تملقق شما رو میگن. یکی داشت تعریف میکردن پیغمبر بر اگه این سری هم داشت شما دیگه همه رو نابود کردین رفت آدم اینز کم ضرفیت یه خرد از داشتترین خود رو گم میکنه. حالان شما من هم ممکنه حال خوشی داشته باشم تو مناجات اما دوست تا بیان تعریف کنن حالم خراب میشه مثلا بیا می خوش حالت شاد داریم وسطت میکنین مثل مار به خودت می دیگه آقا تموم شد چون مادرت میگن سرتون ها دعا کن وچه های ما رو انقدر آقا تملقشو میکرد دیگه اصلا در ها خوبوم می آدم میذا کم ظرفیته یه خورده ازش تعریف کنه خ گم میکنه کیا خوبن اونایی که نقدت میکنن انتقادت میکنن. حد اقلش این بادتو خالی میکنه. <تص> الان چقدر خوبه من از منبر میام بایین یه بچه هشت ساله هفت ساله بیاد دیگه این آیه رو که شما خوندی غلط خوندی قرآن رو نشون میده. باد ما خالی میشه بد نیست آدم آدمی که باد میکنه خودش رو گم میکند یه بچه میاد بادشو رو بعد نگام ای بابا میگم آره بابا من آیه رو غلط خوندم بادش <تص> رو میگه برد بر نخورا قلط هم معنی کردی <تصفيق> خوبه دیگه میریم میفهمیم چیزی نیست اینا, اینا لطف خدا هست. اما خفیت. هست به اینا میگن الطاف خفیه باد شما خالی میشه میفهمی چیزی نیست اما اینکه هی بیان شما رو تملقت بگن خیلی آدمای خوبی بودن ما تو تاریخ زندگیم آقا من از اینا زیاد دیدم خیلی آدمای خوبی بودن انقدر تملق اینا رو گفتن چپ کردن به خدا انقدر گفتن مثل این پیدا نمیشه به قول این شاعر میگه از وفور مدها فرعون شد میگه اگه من اینم فرعون شد اولش فرعون نبود انقد متملقین اومدن تملقشو گرفتن گفتن آخر رو من خدام انا ربکوم الاعلا این تو خدایی رفت برو خدا رحمت کنه امام رو تو مجلس ایام رحلت امام از ما پیش نییم از چیزی راجع ایشون بگیم آقای آی حجازی نماینده اول تهران شد دور اول مجلس از همه بیشتر رای آورد هرکی هم تهران نماینده اول بشه تو کل ایران نماینده اوله دیگه چون جمعیت ایران تهران زیاده دیگه بالاترین رعی و مجلس اول فخردین حجازی آورد رحمت الله علیه. اونم واعز بود منبری بود خب رفتم پیش امام قدر این رای اول آورده این صحبت کنه اونم نمیدن اونا که یادش به سن منن دیدنش دیگه من که زیاد دیده بودمش خیلی عدیب بود خشنگ صحبت میکردی به امام گفت تو ابراهیمی با تو شکستی تو موسای فرعون رو دونیم کردی تو عیسی سبن مریمی ایران رو زنده کردی تو کی ترسون، تو کی تارسون تو خجت ابن الحسنی جهان رو پر از عقل و داد میکنی امام بلنگور داشتم جلوش دیدیم که بی مقدمه صحبت میکرد بسم الله الرحمن الرحیم این آقای فخر الدین گفت خطیب خوبیه خوب صحبت میکنه ولی من میترسم این حرفا باورم بیاد و چپ کنم گفت تو رو خدا جلوی من تملق من نهیم چی میگه آقا از من تعریف نکنه مرد خدا گفت تو خوب صحبت میکنی ولی خدا این بد سکری ای نمیگه من ای وقت این رو باور کنم یه تاقوتی بشم نمید جمه کنم بعد ها خبرگان رعی گیری شد آیت الله مشکینی رعی اول بود از همه بیشتر تو تهران آقای مشکینی رعی آورد. خبرگان که رفتن آقای مشکینی صحبت کرد من خیلی از امام تعریف کرد وقتی بلنگو رو داشتن جلویشون گفت بسم الله الرحمن الرحیم من از آقای مشکینی توقع نداشتم ایشون عالم من و نباید این کارو رو بیکرم. حوالا اون فخر دین یک کاری کرد شما که معلم اخلاقی که شما که معلم اخلاق حوزه های علمیه ای تو نبرد این کار می کردی. خب چی میگه آقا تملق منو رو نگی مردان خدا به خاطر این میفرماید که خاک به پاشین تو صورت اونایی که تملق شما رو میگن. اما اینجا میفرماید نصیحت تو خیرخواهی تو برای رفیقت خالص کن میخواد خوشش میاد میخواد خوشش نایاد بگم من اونچه که به صلاح تو بود گفتم رفاقتتان قطع کردی کردی آخر میتونم حق با شما آخرم میتونم از شما خیرخواهی کردی یه چونه دیگه هم بگم روزه بخونم این سه جمله با هم مرتبط بود می هر سه ستاشو بخونم می اگر خواستی با رفیقت قط رابطه بکنی همه پلا رو پشت سرت خراب نکن که اگه یه وقت خواستی آشتی کنی راه بازگشت بذار این حدیث آقا خیلی جمله خوبیه نه تو دوستی از حد بگذارونی نه تو دشمنی اعتدام آدم معتدل خوبه اگه با یکی خیلی هم ندارین همه اسرارتو بهش نگو با یکی آقا خیلی نداری مثلا میگی ما چهل ساله با هم خونه یکی هفته آمد خانوادگی داریم مثلا پول من و پول اون نداره اما بازم هم همه اسرارتو بهش نگو یه وقت با هم دشمن میشین همین اینا رو برالای تو استفاده میگو دنیا هزار چرخ میخوره دیگه یه همین دوست جنجونی آقا دشمن خونی شما میشه اصرار تو میره همه جا میگی اعتدال خیلی با هم رفیقی اما معتدل باش همه اصرار تو براش نگی اگر هم یه وقت خواستی با یه کسی قطع رابطه کنی بازم اعتدال دشمنی رو دیگه به نهایت نرسون شاید چند وقتی که پشیمون شدی خواستی با هم بازم دوستی کنی راه بازگشت بذار هم در دشمنی معتدل با دوستاتون با هم در قطع رابطه معتدل باشین هم در رفاقت نه آدم با یکی اینقدر ندار بشه که همه رو به او بگه. خب یه روزی آقا اگه بین توش شکراب شد چی گاهی آقا دوتا دوست با هم دیگه وصلت میکنن دختر و پسر به هم میدن کارشو به دشمنی میکشد در جونه با هم ندارن و چهل ساله با هم رفیقن این دخترشو میده به پسر او خب اینا با هم نمیسازن به طلا حالا بیا ببین آقا این دوتا دوتا دوست سمیمی اصلا میشن کارت و پنیر خب حالا همه افرارتان پیشون هم همه جا میده بلالیت استفاده میکنه میگه آقا ببین این رفیق ما این جوله این عیبا همه خب بیا و درستش کن یه دفعه بابا با یه کسی رابطت خراب شد چه چند وقتی که دوباره آشتی کردیم همه پولار رو پشت سرت خراب نکن دیگه نگی اصلا روم نمیشه برگردم جواهر گفته مرتفعی آقا اون اهلش میدونن ما که ما که آقا محاسن مو شده میدونیم که امیرالمومنین درات چی میگه این این سه جمله از جملات امیرالمومنین در دوستی دیگه یک کلم هم ذکر مصیبت کنم دیشب امیرالمومنین تمام بچه جمع کرد دیشب میگن سم دیگه به پاهای علی رسید نمازها رو نشسته میخوند مثل روزهای آخر فاطمه زهر آزان همونگاه بچه خیلی آین دید این سخن این سخن ورد زبان افتاد دیدی آخر علی از پا افتاد <تصفح�>. <تصفيق> اون شیری که برای معاویه وقتی خبر رسید که علی کشته شد در مهراب گفت اون شیری که پنجه تو زمین فرو میکرد دشمنا مثل بید میلرزیدن کارش تمام می شد <تصفيق> اینو معاویه گفته آفراده خدا میدونه تو جنگ ها چقدر بدنش مثل بید لرزیده وقتی صورت مصمم امید اون شیری که تنجه تو زمین فرو میکرد و دشمن وقتی او رو میدید بدنش مثل بید میلرزید کارش تمام شد دید آخر علی از پا افتاد دیشب میگن بچه ها اومدن دیدن که امیرالمومنین نشسته نماز میخواند تمام اومین بچه هاشو جنگ همون حرف های فاطمه زهره تکرار خاندان حسن جان شب منو قتب بده شب منو کفن کن شب قبر منو مخفی کنیم گفت اینا جنازه منم پیدا کنند بدنمو به آتش میکشن واقعا آقا حالا یه رئیس جمهور از همین اسد از دنیا رفت من یادم نمییره حافظ اسد رئیس جمهور سوریه الان یادم رفته 37 تا ظاهرم پادشاه و رئیس جمهور رفت هشنازش. سی و هفت تا پادشاه و پادشا رئیس جمهور حالا وزیر خارجه چقدر رفته بود او اصلا چیز عجیبی بود با اون اما علی آقا از دنیا رفت شبونه چند نفر خودش گفت منم علونم شروح میشد گفت قبر منو پیدا کنن میرن بدنمو به آتش میکشن تا زمان امام صادق قبر امیرالمومنین مخفی بود فقط بچه هاش میدونه هیچگی نمیدونه فقط امام صادق میدونه مثلا امام سجاد میدونه تا کم کم امام صادق صلاح دونست به نزدیکانش می گفت. ما ماویه میگن اومده بود شکار این سگای شگاری رو میفرستاد دنبال بازها اینا حمله میکردن به آهوها به آهوها اینا که حمله میکردن آوا میامدن بالا یه تپه وای دیگه سگا جلو نمیرفتن فقط پارس میکردن ماویه گوه سگ گرستنه که این چیزه آلیش نیم دوباره اینا رو جمع کرد آوها تو دشت پراکنده شدن دوباره سگا رو تا سه بار سگا رو رها کرد دید آوها میان رو اون تپه سگا دیگه جلو نمیدن واسه او یه پیری چیزی اهل دلی بریم بگم یه پیر مردی آوردن گفت سر این تپه چیه سه بار گفت ما هارون بگم در امانم هارون رشید بگم در امانم زمان هارون رشید گفت در امانی گفت خون عمانی. گفت اینجا قبر امیرالمومنینه المومنینه گفت وقتی پناه میارن به این قبر علی زامنه سگا دیگه متعرضش نمیشن. تو همین مفاتی است. یه اهل دلی میگف امام صادق قبر امیر رو من نشون داد من شبا میرفتم تو تاریکی میرفتم نیمه ها یه نیمه شبی سه چهار تا شدیم چون قبر رو میشناختم گفت اومدیم دیدیم که یه شیری داره میاد به سمت قبر گفم ما ترسیدیم فاز دیدیم شیره اومده هیست ساعدش رو میمالد به قبر امیر المومن این عشق میریزه وقتی جلو رفته این خون داره از ساعدش اما میفرمودن که شب منو قصد بدیم شب منو کفن کنیم محمد انفیه میگه آقا رو قصد میدادیم اما دیگه کسی نیاز نداشتیم که او رو جابجا خود علی خودش رو جا به بود. میکرد <تصحاب> اگه سمت راست خودش سمت راست میشد اگه سمت چپ، فقط ما میشستیم تو دل شب. فرمو سر تابوت و کار نداشته باشید ملائکه میان سر تابوتو رو میگیرن جبرئیل میگیره میکال. شما فقط هر جا اونا میرن دنبالشون برید من توی نقلی دیدم چون شب توفانی و سردی بود ملائکم رو گم کردن توی نقل دیدم همین میکایل و اینا یه اسفی گفت امام حسن گفت دیدم. اونا هم گم کردن گفت یه اسفی اومد هی hey به اینا میگفتش که بیاد اما نقاب زده بود آورد موزه قبر رو اومد بره من دامنش رو گرفتم گفتم به حق امیر این نقابتو رو کنار بزن من سو... با همین زد کنار دیدم خوه ازن عبی امیر المومنین علی ابن عبی طالب گفتم خود علی سر تابوت و ملائکه میگیرن شما پشت سر بیاین. همین محمد انفیه میگه به هر اماراتی که تو کوفه میرسیدیم می دیدم خم میشن صدا میزنن از سلام علیکه یا امیرالله باز بگم گفت وقتی منو گذاشتین تو خاک این روپوشه که امام حسن می از بالا سر این روپوشو زد کنار دید پیغمبر اکرم نشست با همه انبیا دارن برای علی گریه میکنن. کنن امام حسن از پایین پا زد کنار دید فاطمه زهرانش که با تمام زنهای مجلله دارن برای علی گریه میکنن اشک میرید علی جان بگم دلاتون رو ببرم مخفیانه بود شبانه بود تو تاریکی بود اما بالاخره قسلت دادن شام قریبان بالاخره کفنت کردن بلاخره با احترام کامل آوردن به خاک سه اما لا یوم که یوم یا ابا وقت الله دلها بسوزه برا آقایی که سه روز و سه شب بدنش رو خواهدهای داغ کردن کاش دیگه به همین اکتفا میکردن دیگه اسبار و نعل تازه نمیدادن به بدن حدی الله و الله و فو يا أهل بيت النبرة سلام عليك يا